می دمد صبح و کله لبست سعاب از سبوح از سبوح یا از قاب می چکد جالب روخ لاله المدام المدام یا احباب می وزد از چمن نسیم بهشت آن بنوشید دم به دم می نا تخت زمرد زده است گل به چمن من راه چون لعن آتشین در یاد در میخانه بستن دگر افتته یا مفتح الهوال لب و را حقوق نمک هست بر جان و سینه آ کبار این چون این موسمی عجب باشد که ببندند می کده به شتا این چون این موسمی عجب باشد که ببندند میکده بشتا بر رخ ساغی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده نام